برلین آلمان سی نوامبر ۱۹۳۸ بعد از آن شب غمانگیز کریستال، مشکلات معیر زیاد شد. هر وقت که داخل مغازهش میشد شد، بیشتر میشد. شد. نمی توانست میزان ویرانی و خرابی هایی که به مغازه وارد شده بود را حساب کند و نمی توانست وضعیت را به همان حالتی که قبلا بود بازگردند. وقایی آن شب در واقع اعلام رسمی حکومت رایش سوم مبلی بر این بود که یهود دشمن رسمیش است. شرکت های بیمه از پرداخت خسارت به او و دیگر متضررین منع شده بودند. شدت خسارت به بار آمده خیلی زیاد بود و بازگرداندن اوزا به حالت قبل برای اغلب آنها امکان پذیر نبود. هر روز بیشتر از قبل زندگی برایش سخت میشد مغازه اتیقه فروشی که از پدرش به ارس برده بود پیش چشمش نبود شد. این حرفه را از آمخته بود. اجدادش در همین مکان یعنی در یکی از محله های قدیمی برلین کارشان را شروع کرده بودند و امروز غم‌اندوه او بیشتر شد زیرا می‌دانست باید مکانی را که از کودکی در آن رشد کرده و بزرگ شده بود و شغلی که کسی غیر از او آن را بلد نبود همه را ترک کند و به سوی آینده ای نامعلوم برود که چاره جز فرار به سوی آن را نداشت با نگاهش شانه درمی‌کوبید بالاخره آن را یافت قفس‌هایی که سالیان سال با عتیقجات و عشی های گران قیمت پر بود، اکنون خالی شده بود. روی آن، جز تعداد کمی از اشیاء که دست آن جوانان متأسب و افراطی به آنها نرسیده بود، چیزی باقی نمانده بود. آن جوانان دستورات رهبران خود را اجرا کردند. آنها دستور داشتند از املاک و دارایی‌های یهودیان امثال معیر، یعنی کسانی که دشمن وطن به حساب می‌آمدند، هر چیزی که به دستشان می‌رسید نابود کنند. میخواست مغازهش رو به همان درخشندگی سابق برگرداند. اما شرایطی که اکنون در کشور در جریان بود بسیار قویتر از سلاش او بود. او و خانوادهش جزء مزنونین بودند. ملزم بودند با قرار دادن یک علامت ستاره روی بازوی لباسشان خود را بشناسند. تا هر کسی آنها را میدید بداند که جزء یهودیان ترد شده از کشور هستند. به موازات این قوانین سخت، پیوست خبرهایی از دستگیری تعداد زیادی از یهودیان به گوش می رسید. که بعد از دستگیری همه را در محلهای مشخص جمع کرده و ساعت رفت آمد و راههای عبور و مرور مشخصی برایشان تعیین کرده بودند. خبرها از حد شایعه گذشته بود چون حکم دستگیری بسیاری از دوستان و نزدیکان خود معیر را هم شامل شده بود حتی خاخام شنبه گذشته او را نصیحت کرد و به داد. هر کسی باید به فکر خودش باشه آقای میر، موضوع این قصر هم ساده نیست. نگاهش به ویولون افتاد. در گوشه روی ردیف وسط بالای گاف صندوق. گاف صندوق مغازه قرار داشت. و از سالها پیش تا به امروز در مکانش پنهان مانده بود. بدون اینکه صاحبش برای پس گرفتن آن برگردد. در روز گروه گذاشتن ویولون توسط آن جوان مایر مطمئن بود که او دوباره برای پس گرفتن بر و حکایتی وجود داشت این موضوعی است که معی در شغل خود تجربه کرده بود این بخش از مهارت او در شغلش است که پیش بینی کند چه کسی برای پس گرفتن اشیای خود باز خواهد گشت و چه کسی ای را که گر گذاشته رها خواهد کرد. این پیش بینی در قیمت گذاری اشیای و در نمایش آن نقش اساسی داشت برای آنچه که حدس میزد صاحبش رهایش می و باز نمیگردد قیمت پایینی می و برای آنچه که فکر میکرد صاحبش باز خواهد گشت قیمت بالایی برای امانتی تعیین میکرد و به این ترتیب سود بالایی نصیبش میشد آن جوان را به طور دقیق به یاد میآورد او معمولا آرات موسیقی همچون این ویولون را امانت نمیگرفت یا شاید به دلیل وضع ظاهری جوان بود که نمیخواست آن را قبول کند جوان وضعیت چندان مطلوبی نداشت و از اینکه مجبور بود ویولون را گرو بگذارد ناراحت به نظر میرسید میخوام این ویولون رو پیش شما گرو بذارم. این رو با نکنت گفت و در همان حال هر لحظه به دختر بلوندی که دم در مغازه منتظرش ایستاده بود نگاه میکرد. این روزها ابزار موسیقی زیاد خریدار نداره. این پاسخ همیشگی معیر بود. درباره همه چیزهایی که به او ارزمی شد همین می میگفت. این شروع همیشگیش برای آوردن قیمتی بود که گروگزار منتظرش بود این واقعا خاص و متواوته و ارزش تاریخی بالایی هم داره خب پس میتونی اون رو به یک مرکز هنری ببری مطمئنم اونها برای داستان این ویولون ارزش بیشتری قائل خواهند بود معیر از کیپای روی سر جوان که فرق سرش را پوشانده بود فهمید او یهودی است و از لباسش هم دانست خانواده بسیار ثروتمند دارد نگاه جوان همچنان پشت سر هم بین دختری که دم در منتظر ایستاده بود و آن ویولون در حرکت بود. گاهی به آن نگاه میکرد و گاهی به این. عادت داشت برای ماجرای مشتری و آنچه که او را مجبور کرده بود که یک عتیقه قدیمی و با ترین چیزی که در اختیار دارد را گرو بگذارد در ذهنش داستان ببافد. باهاش آهنگ هم میزنی؟ بله از بچگیم. آرزوم این بود که نوازنده یه ارک مایر این را گفت و در حالی که می‌دونست ارزش فیولون ده ها برابر این قیمت است. البته با وجود این که من می‌دونم تو برای پس گرفتنش برنمی‌گردی این قیمت رو میذارم و تقریبا مطمئنم که فروش آن هم برام خیلی سخت خواهد بود. و در ذهنش این داشت داشت آن پسر و دختر جوان برای فرار و ازدواج دور از چشم برنامه برنامه‌ریزی کردند. حتما خانواده ی دختر آلمانی ازدواج با مرد یهودی را نمیپذیرفتند و مادر آن جوان هم ازدواج پسرش با دختری غیر یهود را قبول نمیکرد. برای اینکه میخواست نسلشان از همکیشان خودشان باشد. بیاد آورد که با حرف او چهره جوان گویی رفته و به شدت درمانده شده بود. چهل مارک رایش او پرداخت. جوان با قدمهایی که گویی جنازه تشیم میکند به طرف خروجی مغازه رفت. روزهای زندگی ژنرال اشمیت شبیه هم شده بود. بعد از آنکه مجبور به بازنشستگی شد، هیچ اتفاق جدیدی نمی‌افتاد. ناراحتیش به خاطر بازنشستگی نبود. همیشه میدانست که بعد از 60 سالگی بالاخره وز پیش خواهد آمد. اما آنچه که در قلبش سنگینی می کرد و دلش را می‌آزرد، برخورد توهینآمیزی بود که با مردی همچون او شد. کسی که با عشق و علاقه زیاد به آلمان خدمت کرده بود. و در جنگ بزرگ کشورش شرکت داشت و شجاعانه جنگید و در آن جنگ به نشان افتخار دست یافت در مدت یک شبانه روز ناگهان دوران خدمتش به پایان رسید و از او خواستند که پروندهش را جمع کند یک جوان متکبر به او هشدار داد که دیگر عنصری نامطلوب به شما می رود این قضیه در همان بخش پلیس اتفاق افتاد که زمانی حتی دیوارهایش به دستور او میلرزید ماندن در آن اوضا برایش سخت بود ض که بسیار تند و سریع تغییر میکرد یعنی از زمانی که سوسیالیست ها به رهبری هیتلر حکومت را در دست گرفتند و به قدرت رسیدند در طول دوران خدمتش آموخته بود که مهمترین وظیفش این است که بدون تبعیض از هموطنانش حمایت کند شاید از همان روزی که به او دستور داده شد در وقعی آن شب سیاه و تاریک دخالت نکند مشکلاتش بیشتر شد شبی که با اطلاق نام شب شیشهای آن را دادند عمل به این دستور برای او واقعا سخت بود اینکه پلیس را متوقف کند تا هیچ کاری نکند او که همیشه افتخار میکرد یک افسر است حالا باید موضع تماشاگر را داشته باشد و بایستد و تماشا کند و مردم حمله کنند و را که میخواستند بشکنند و آتش بزنند کسانی که به اقتصاد آلمان ضربه میزدند باید مجازات میشدند اما قانونی که آن همه برایش ارزش قائل بود و به آن اهمیت میداد اکنون بدون اینکه کسی مانعه شود زیر پا گذاشته و نقذ میشد. با آن کسانی که وظیفهشان برقراری آرامش و صلح در کشور بود حق نداشتند در آن دخالتی کنند. این چیزی بود که دلش را به درد می آورد. بعد از آن اتفاق او در موقعیت های مختلف قرار گرفت و هر بار کاری را انجام میداد که فکر می کرد به عدالت نزدیک تر است. هرچند مقامات کشور از کارهای او، اینطور برداشت میکردند که نسبت به دشمن داخلی کشور ملاطفت نشان میدهد به همین دلیل هم تصمیم گرفتند مقامش را از او بگیرند آنها افکار چنین اشخاصی را خطرناک قلمداد میکردند و میخواستند ریشه چنین افکاری را بخوش کنند وقتی در آن وقت شب زنگ خانهشان را زدند فکرش را هم نمیکرد همسایهش معیر باشد و از آن دیدار ناگهانی تعجب کرد خیلی دیر وقت به دیدنتون اومدم. بدونید که ما لطف شما درحق خودم و خانوادم رو هیچ وقت فراموش کنیم. ژنرال متوجه نمیشد که یهودی پیر از چه حرف می زند؟ جنرال پیمر دوست داشت هرچند طبیعت شغل و حرفه ای او را نمیپید کسی که اطقجات را گرون می گرفت و تحت عنوان مغازه اتیقا فروشی در واقع خون نیازمندان را میمکید. میر حرفش را ادامه داد. اون روزی که آن جوانان متاسب محله ما حجوم به هر لحظه ممکن بود ناگهان به راشل حمله کنن این شما بودین که نجاتش دادین ما این لطف شما رو فراموش نمیکنیم ژنرال دعوتش کرد وارد خانه شود و گفت من کاری رو انجام دادم که هر آدم عاقلی وسط کارهای جنونمیز اون شب انجام میداد اون جوانها راه اشتباهی رو در پیش گرفتند که البته این به خاطر عشق زیادی هست که به کشورشون آلمان دارن را به جنرال اشمید، این ویولون چند سالی میشه پیش من مونده و فکر میکنم اگه دست کسی باشه که بتونه باهاش آهنگی بزنه فایده خیلی بیشتر خواهد بود به همین خاطر من اون رو به دختران شمال لیلیان و هیلدا هدیه میدم شاید اونها روزی بتونن خوب باهاش آهنگ بزنن امیدوارم این هدیه رو به عنوان یه تشکر ساده به خاطر کاری که برای نجات دخترم انجام دادین به حساب بیارین و از من قبول کنین جرول از او تشکر کرد و هدیهش را پذیرفت. سپس دعوتش کرد تا با هم یک پیاله آبجو بنوشند. مایر عذرخواهی کرد و گفت هرگز الکل نمی نوشد. آنها حرف دیگری با هم نداشتند سالها بود که با هم همسایه بودند اما زیاد همدیگر رو نمی شناختند و هر کدام سرشان به زندگی خودشان گرم بود. به همین دلیل هم شان فقط در حد سلام و علیک آن هم فقط با اشاره سر بود. هر وقت که در پیادهروی خیابان محل سکونتشان احیاناً چشمشان به یکدیگر میفتاد برای هم سری تکان میدادند مییر به طرف در رفت در رو باز کرد تا از آنجا برود اما لحظی با تردید ایستاد رویش را رو به طرف ژنرال برگرداند و شروع به صحبت کرد در واقع به خاطر همین موضوع به آنجا آمده بود جناب ژنرال همونطور که میدونین نه فقط برلین بلکه کل آلمان دیگه برای امصال من و خانوادهم امن نیست میدونم که این وضعیت موقتیه اما فکر میکنم که رفتن از این کشور در حال حاضر بهترین کاریه که میتونم برای راشل و برادرش انجام بدم. جنرال درک نمیکرد چرا میر او را در جریان افکارش قرار میدهد. آنها هیچ وقت تا این حد با هم دوست نبودند که بخواهد چون چیزهایی را با او در درمیان بگذارد. میدونید که در اوضاع فعلی حرکت ای مثل ما آسون نیست. اون هم بدون مجوز رسمی. می دونم که شما رابطه و نفوذ زیادی دارین. میتونم خواهش کنم به من و خانوادم برای خروج از برلین کمک کنید. اگه بشه مجوزی داشته باشم برای اینکه به دیدار برادر یا مادر مریضم برم. به هر جای خارج از این شهر. با این کار یک خانواده را از سرنوشت سیاهی که در انتظارشون هست نجات خواهید داد. جنرال قبل از اینکه جواب او را بدهد، پشت در نیمه باز سایه دستش را جلو برد و در را باز کرد لیلیان را دید که پشت در گوش ایستاده بود و با دقت به حرف آنها گوش میداد